اصل پنجام یکی دو ماه به این روال گذشت پیش از سال نو برادر زنش آمد و نزدارها مهمان شد وقتی او رسید ایوان ایریچ در دادگاه بود و پروسکوبی و فیادروفنا برای خرید بیرون رفته بود ایوان ایریچ وقتی به خانه آمد برادر زنش را تندرست و با نشاط در اتاق کار خود یافت که داشت چمدانش را باز می‌کرد. به شنیدن صدای قدم های ایوان ایلیچ سر بلند کرد و چند ثانیهی بیان که چیزی بگوید مبهوت در شهرش خیره شد این نگاه در نظر ایوان بسیار گویه آمد برادرزنش دهان باز کرده بود که فریادی از حجب بکشد اما خودداری کرده بود این نشانه همه ی های ایوان را تایید کرد ایوان گفت چه شده؟ خیلی عوض شده برادرزنش گفت، بله عوض که شده ای. بعد از آن ایوانیدیش هر کار کرد که برادرزنش را به گفتگو بر سر حیعت ظاهر خود بکشاند موفق نشد. و برادرزن ساکت ماند. وقتی پراسگو یا دروفنا به خانه بازگشت برادرزنش نزد او رفت. ایوانیدیش در اتاق را قف کرد. و در آینه به خود نگریست. اول از جلو و بعد از پهلو. اکسی را که بازنش گرفته بود برداشت و آن را با آنچه در آینه می دید مقایسه کرد. اختلاف میان آنها العاده بود. بعد دستهایش را تا آرنج اوریان کرد و نگاهی به آنها انداخت. بعد آسین را پایین کشید و روی کانا نشست. دلش گرفته و جانش تاریکتر از چپ شده بود. با خود گفت نه نه نباید نباید از جا جست و پشت میز نشست و پرونده ای را گشود و به مطالعه آن پرداخت. هماناتبانه صدا داد. در را باز کرد و به سالون رفت. در تالار پذیرایی بسته بود. رکپا، رکپا به آن نزدیک شد و پشت در ایستاد به گوش دادن. پرسکوی و فیدروف نامی گفت نه تو مبالغه میکنی. برادرش گفت مبالغه یعنی چه؟ تویی که نمی بینی. او از همین حالا مرده به چشمانش نگاه کن بینور و بینور آخر چشو است براسکوویا فیودرونا گفت کسی نمیداند نیکلایو اسم دکتر دوم این بود چیزهایی میگوید اما من سردر نمیآورم لشچتیتسکی این همان پزشک سرشناس بود به عکس میگوید ایوانلیش از در دور شد و به اتاق خود رفت و سخت افلاد و به فکر فرو رفت کلیه آویختگی کلیه کلیه هم جدا شده و در شکم هم بیلان است تمام آنچه دکترها از جدا شدن کلیه و سرگردانی آن در شکم می گفتند، در خاطر مرور کرد به ذهن خود فشار آورد و کوشید با نیروی خیال کلیه سرگردان خود را در اختیار آورد و از حرکت بازش دارد و جایش را محکم کند به نظرش که برای این کار تلاش زیادی لازم نیست. با خود گفت نه یکبار دیگر بروم پیش پیوتر ای ویچ. این همان رفیقی بود که رفیقش به بود. زنج زد و دستور داد را آماده کنند و آماده ای رفتن شد. زنش با لحن بسیار اندوهناک و مهربانی بی ساقه کجا می رفیشن؟ این مهربانی زنش که به آن عادت نداشت به خش بشاورد با سیمایی گرفته نگاهی به او کرد و گفت باید بروم پیش پیوتر ایواروویچ به دیدن دوستی که دوستش پزشک بود رفت و با هم به خانهٔ دکتر رفتند پزشک را دید و مدتی با او صحبت کرد چون را که به نظر دکتر در درون او میگذشت از نظر تشریحی و فیزیولوژیکی بررسی کرد همه چیز را فهمید به نظر پزشک چیزی در آپانتیسش بود که معالجه شدنی بود محفی بود که اندامی را تقویت کرد و از فعالیت اندام دیگری کاز تا یکی دیگر را بمکد و کار درست می شود. برای نهار کمی دیر رسید. نهار خورد و اندکی در بگو بخند شرکت کرد. اما مدتی طول کشید تا توانست با اتاق خود برگردد و به کار مشور شود. عاقبت رفت و فوراً به کار نشست پروندهها را میخواند و آنها را بررسی می کرد. اما ضمن کار، پیوسته آگاه بود به این که مسئله مهم دیگر و امیران خصوصی را برای پایان کار اداریش گذاشته است و همین فکر آسودش نمی کذاشت. وقتی کارش را تمام کرد دانست که این مسئله عمیقا خصوصی و برای آخر مانده فکر کردن به آپاندیسش بود اما به آن نپرداخت و به تالار پذیرایی رفت تا چای بخورد. مهمان آمده بود از جمله بازپرس جوانی که نامزده دلخواه دخترشان بود. به نظر پراسکوب یا فیدروفنا، ایوانیدیچ شب را با نشاطی بیش از شبهای دیگر به آورد اما ایوانیدیچ لحظه هم از این دقدق فارغ نبود که باید به آپاندیسش فکر کند و این فکر را به عقب می اندازد. یازده بود که برخاست و خدا خداحافظی کرد و به اتاق خود رفت. از وقتی بیمار شده بود تنها در اتاق کوچکی مجاور اتاق کار خود می خوابید. لباس از تندر آورد و رومانی از امیر زولا برداشت، اما به آن مشغول نشد، بلکه به فکر افتاد. در سهنه خیالش فکر آبانتیسش در کار بود که او به بهود آن دل بسته بود. مکش بود و دفع تا جریانات درست عملیات اندرونش باز برقرار شد. با خود گفت، بله، همین، فقط باید کمک کرد تا طبیعت کار خود را صورت دهد. و یاد دبا افتاد و نیمخیش شد و دوایی را که میبایست خورد و باز به و با دقت بسیار به اثر رضایت آن در شکم خود و تسکین درد توجه کرد با خود گفت فقط باید دبا را مرتب خورد و از نفوذ عوامل زیاناور اجتراب کرد از همین حالا حس میکنم که حالم کمی بهتر است حتی خیلی بهتر به پهلوی خود دستمالید. دست که میزد دردی احساس نمیکرد. بله جدا چیزی هست نمیکنم. حالم خیلی بهتر است شم را خاموش کرد و به پهلو خوابید درد آپاندیس دارد خوب می شود دارد فرومکیده می شود ناگه درد کهنه و گنگ و تیل کشنده آشنایش وقت کرد که دست بردار نبود و نمیشد شد سرسریش گرفت و باز همان طعم بد دهان قلبش میخواست، از تبش بازی و سرش گیج میرفت. گفت: وای خدایا، خدایا، باز شروع شد. نمیخواد دست از سرم بردارد. آگه آن مسئله به صورت دیگری برایش مطرح شد. با خود گفت: آپاندیز کلیه از جا کند شده با سرگردان؟ نه خیر صحبت زندگی و مرگ است. پیش از این زندگی بود ولی دارد می‌رفت. میرود و من نمیتوانم نگهش دارم چه فایده که خودم را گل بزنم مگر همه نمیبینند که دارم میمیرم برای همه مسلم است فقط خود منم که بیخبرم صحبت فقط بر سر این است که مرگ کیسر سر میرسد چند هفته یا چند روز دیگر و چه بسا همین الان تا حالا روشنایی بود و یک دفعه تاریکی میآید تا حالا اینجا بودم اما میروم آنجا ولی کجا؟ لرزه سرمایی سرابایش را فرا گرفت نفسش بند آمد فقط صدای تپش قلبش را می با خود گفت وقتی من نباشم چه چیز خواهد بود؟ هیچ چیز نخواهد بود من کجا خواهم بود؟ یعنی مرگ همین است؟ نه نمی خواهم از جا بر و سعی کرد شمی شم روشن کند با دستی لرزان کورمال کورمال به دنبال شم گشت شام با شمدان از دستش برو افتاد روی بالش واغلید با چشمانی باز در تاریکی خیره شده با خود گفت. خب که؟ چه چه فرق می کند؟ هرچهی میخواهد بشود؟ مرگ بله مرگ آنها هیچ یک از حال من خبر ندارند و نمیخواهند خبر داشته باشند. چکشان نمیگذد سرشان گرم است کیفشان را می کنند پیانوشان را میزنند از پشت در بسته دمدم یه گفتگو و ترجیبند آباز را میشنید بیخیالند بی خیالند ولی آنها هم می میرند. چقدر احمقند من زودتر می میرم آنها دیرتر ولی آنها هم از این بلا معاف نمی مانند. خوشحالند یابوها. از خش میخواست خواست شود سخت رنج می برد. رنجیر بیر قابل تحمل. چطور ممکن است که همه همیشه به تحمل این وحشت سیاه محکوم باشند از جا خواست، با خود گفت چیزی هست که درست در نمیآید باید آرام بگیرم باید بر آنچه از اول تا حالا گذشته تعمل کنم هلوقت شروع کرده فکر کردن خوب ناراحتی من اول با ای شروع شد که به پهلویم خورد اما هیچ تغییری در حالم پیدا شد آن روز حالا با روزهای بعد هیچ تفاوتی نداشت بعد کمی درد گرفت و بعد درد شدیدتر شد بعد رفتم پیش این دکتر و آن دکتر بعد دلم گرفت و بعد افسردگی شدید بعد باز این دکتر و آن دکتر و مدام به لبه پرتگاه نزدیک تر می شدم هم تحلیل می رود ورد مدام به من نزدیک می شود دیگر نیرویی برایم نمانده چشمانم دیگر نوری ندارد چیزی به مرگم نمانده و من فکر آپاندیسم هستم میخواهم رودم را معالجه کنم حال که مرگ که رسیده است ولی آیا به این مرگ است دوباره وحشت در دلش افتاد نفسش تنگی گرفت خم شد و به جستجوی کبریت افتاد و آرنجش بر میز اصلی پاتختی فشار آورد این میز مزاحمش بود و آرنجش را درد میآورد از آن به خشم آمد و بیشتر بر آن فشار آورد تا اینکه عاقبت میز را برگردند نفسش بند آمده بود و درمانده شده بود و بر پشت خوابید در انتظار که مرگ فورا برسد مهمان‌ها داشتند می‌رفتند. پلاسگوبیو فیودورونا آنها را مشایعت صدای افتادن میز را که شنید وارد شد و گفت چه تست ایوانیدیش گفت چیزی نیست نفهمیدم دستم خورد افتاد رفت و شم آورد ایوانلیچ افتاده بود و به شدت نفس نفس میزد مثل کسی که یک ورز دیده باشد به او خیره شده بود پراسکویو فیودرونا گفت جان راست بگو چه تست ایوانلیچ گفت چیزی نیست پانداختمش با خود گفت چه فایده که بگویم حال نخواهد فهمید راستی هم چیزی نفهمید شم را برداش آن را برایش روشنگرد و شتابان رفت میبایست مهمانان را مشایفت کند وقتی بازگشت ایوان همچنان افتاده به سقف چشم دوخته بود پلاسکوب یا فیادروفنا گفت چه تست؟ خالص بدتر شده؟ ایوان ایلیش گفت بله تکان داد بنشست رسکوی و فیدروفنا گفت میدنیشن من فکر میکنم خوب است. لشچتیتسکی را دعوت کن این بالای سرت این همان پزشک سرشناس بود و قدمش زیاد بود فکر خرجش را نمیکرد اوالیش لبخندی تلخ زد و گفت نه نازم نیست زنش کمی پهلویش نشست و بعد خم شد و پیشاریش را بوسید و رفت ایواندیش امیغان بیزار بود و به خود فشار بسیار آورد که بوسه او را تحمل کرد و او را از خود نراند و گفت خدا حافظ خدا کند که خوب بخوابی. و بس فیودورونا گفت بسیار خوب